بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة كتابه ايجاره وكل ما امكن الامتفاع به ما بقاء عينه صحة إجارته من حيوان وغيره وهر ان ممكن باشد نفع بردن از اون با باقي ماندن خودش صحيح است اجارش چه حيوان باشه چه چيز ديگه اي یعنی شما اونو ازش نفع ببری خودش باقی بمونه مثل خلاته مثل فرغون مثل اجاره کردن یک حیوان برای رسیدن به مکانی پس آنچه که نفع بردن از اون با باقی ماندن خود اون چیز اصل اون چیز ممکن باشه اجارش درسته حیوان باشه، دوربین اکاسی باشه ماشین باشه خلاطه باشه بالابر باشه موتور برگ باشه هرچی باشه اذا تقدرت منفعته به مدت او عمل زمانی که مشخص بشه منفعت اون نفع اون به مدت یا عمل بله منفعتش مشخص باشه آقا من این خلاته شما رو نیاز دارم دو روز یا من این خلاته شما رو اجاره می کنم این سقف این ساختمان بزنم به عملش کردی ماشین شما رو اجار می کنم یک روز ما شنو شنو راو اجار ميكونم بارو ببرم تا فلان ولا يصح اجاره ما تكون منافعه أعيانا وصحيح نست اجاره ان شيء كي منفعتش عين باشه يعني خود اول شيء كالثمار والألبان ما مند الثمره شير شجر فما نيتونيت بجيت من اين سی های سیب ها رو اجاره میکنن خودشو بخوری که این خود منفعتش نیست این عینشه دیگه بله یا شیر شیر رو بوقعی که شما اجار میکنی منفعتش نیست خودش هست الا فر رضای والبه مگر میگه در شیر دادم شما زنی رو اجار میکنی که فرزندتو شیر بده اینجا درست منفعت خود عینه. اینجا میگه استثنائه و البیر و آب چه ثمن معجل يصح و بالشرط. اجره ثمن معجل است پاداش اجاره ثمن معجل است صحیح است که با عجل باشه صحیح است که به شرط اجل و مدت باشه اینجا دیگه لازمه انواع اجاره رو یادآوری کنم در کتاب فقه منهجی آورده الا اجاره قسمان اجاره بر دو نوعه اجاره عین و اجاره ذمه اجاره عین و اجاره ذمه در اجاره عین بل میشه مزد و مزد اون اجاره عینو تعجیل کرد فوری نباشه تعجیل باشه معجل نباشه فوری نباشه بلکه با عجل باشه با مدت باشه ولی در اجاره ذمه نه باید حال باشه فورا تحویل داده بشه چون در اجاره ذمه اولا اجاره این چه است؟ اجاره این اون اجاره است که وارد بر منفعتی که تعلق به عینی مشخص داره ها؟ این خونه رو اجاره میخوام این ماشین رو اجاره میخوام این اجاره اینه اما اجاره ذمه نه اجاره ذمه اینه که این کار من رو انجام بده در مقابل فلان مست در ذمه هست بر یک عین مشخصی نیست مهم اینه که اون این رو انجام بده شما مثلا میخواهید برید دو میرید نزد یک شرکت مسافربری شما رو برسونه به دبی دی اجاره این نیست اجاره ذمه است مثل سلم یعنی منفعت پیش فروش شده در اجاره رمه منفعت پیش فروش شده مثل سلم هست خوب در اجاره ذمه دیگه چون منفعت دینی هست نمیشه رو هم دینی کرد معامله دین به دین میشه پس میگه عجره ثمنی فوریست صحیح هست تعجیل آن به شرط ولی این در نوع اجاره عین هست ولا تبطل الاجاره بالموت ولا يصح فيها خيار الشرط اجاره بموت باطل نمشي البته انجا هم اشار كرد اجاره عين يا اجاره ذمه بله اجاره ذمه ولا ولا يصح فيها خيار الشرط در اجاره ميگه خيار الشرط درست نيست بس باطل نمیشه اجاره با موت و خب اون دستان اون تموم شد ولا تبطل اجارتو بالموت اجاره با موت باطل نمیشه و بر اون اهد باقی میمونند ولا یسیحو فیه خیار و شرط خیار و شرط هم در اجاره درست نیست مثل معاملات و اذا آجر دارن فن او عبدا فمات بطلت الاجارتو فيما ما من مدتها ها زمانی که اجاره داد خونه ای رو و اون خونه خراب شد او عبدا فمات یا عبدی رو اجاره داد برده ای رو و برده مرد اینجا دیگه اجاره میگه باطل میشه در باقی مانده مدت دیچاره اینجا البته این بر به اجاره عین و اجاره ذمه چون در اجاره این دیگه خودش داره باطل شده مرده اون چیزی که اجارش کرده خونه بوده خراب شده رفته اما اگر اجاره ذمه بوده منو سکونت بدید اجاره این نبوده که در این خونه اون داستانش متفاوته و و مرد العبد كانت اجاره بحالها و و بالخیار اگر مریض شد اون برد که به اجارش داده بود اجاره سر جایشه سر حالتشه و مستجر بالخیار اما مستجر اختیار داره وألا المؤجر نفقته وألوفة الحيوان إذا اجره برمؤجره است برإجار الدهن ده است نفقة عبد ألوفة حيوان زمان كونه إجار مده ولا يضمنه المستأجر إلا بالعدوان مستأجر زامن نيست زامن قيمات نيست يزامن مثل نيست مستعجر ضامن نیست مگر به عدوان مگر اینکه کوتاهی کرده باشه زیاد روی کرده باشه در حق رسیدن به اون مگر اینکه مقصر باشه و عدوانهو انیتجاوزه بهی مصافت اجارته عدوان مستعجر اینه که میگه از اون مسافت اجاره اونو رد بکنه او یستعملهو فی اکثر من حقه یا کارش بگیره اونو بیشتر از حقش حققی که کرده بین مؤجر و بین مستاجر فیزمنه در این حالت میگه زامنه و اوزرته مثله به زیادتی مع المسمان فی اجارته و خب اینجا چیکار میکنه؟ اوزرته مثل میده در اون زیادت مثل قرار بوده ماشین طرفو از اینجا ببره تا سرافان اثران برده خاش اون زیادت خب اجره اجره یا تعیین نشده اون اجره مثل ازش میگرن بقیه کرایه چه اندازه هست اورف کرایه مثلش چه اندازه هست ازش میگرن میگه زامن هست و اجره مثل ازش میگرن به اون زیادتی که انجام داده معالمسمه و همراه اون مسمایی که تعیین شده پس اون موزده مسمار رو ازش میگیرن به اضافه اون زیادتی که کار گرفته اجره پاداش مثل ازش میگرن کرایه مثل بقیه چقدر میگرند از اون اضافه زیادت اون مسیر اضافهی که برده یا اون کار اضافی که ازش کشیده قرار بوده خلاته رو مثلا یه سخف رو بزنه رفته یه اتاق دیگه رو هم زده اون زیادت شو اجرای مصر یا پاداش مصر ازش گرفته میشه همراه با اون مسمایی که تاین شده خب و زامن هست و زامن اون تلف کردنش هست ولاد ضمان على الاجیر ما لمیت عده بر اجیر زمانتی نیست اگر تعدی نکنند اگر تجاوز نکنند اجیر اون کسی است که یک کار بهش تحویل دادن مثل معلمی مثل خیاطی مثل فلانی عجیش کردن خلاصه مثل چوپانی پس زمانت دیس بر یر زمانی که تعدینه کرده باشد الا معلم مصبییان جز معلم بچه ها عجیش کردن بیاد بچه ها رو درس بده بهش اجاره میدن فان نقلت تو تزمن و دیت من مات منهم داربی و لم یه متعدیم آقلله اون معلم، نزدیکان درجه یک پدری زامن دیش اون کسی میشن که با ضربه این معلم مرده خودش نه عاقلش دیش رو میدند اگر و اگر چه که متعدی هم نباشه چون دیه دیگه یه مسئله یه که تعدی و غیر تعدی نمیخواد دیه باید داده بشه ولا يذمن الرائض البهيمه اذا ضربها غير متعد. ضمیر نیست رام کننده حیوان زمانی که بزنه اونو البته تعدی نکنه تجاوز نکنه مثلا میخواد یه حیوانی رو اهلی بکنه با یه چوب اناری با یه تازیانی که حیوان باش نمیره با اون رامش میکنه اینجا زامن نیست ولی اومد با تبر اونو زد تعدی کرد دیگه اینجا زامنه حسر رام کننده یا اهلی کننده حیوان اگر متعدی نکرده بود حیوان زیر دستش مرد که ضامن نیست ولا یفسخ ما استاجره بالاستغناء عنه و فسخ نمیکنه اون چیزی رو که اجارهش کرده با بنیاد شدن از اون چیزی رو اجاره کرده حالا تا یک ماه مثلا الان بنياز سود وسط كار ازش نمیتونه معامل رو اجاره فسخ کنه ولا يفسخ ما آجره بالحاجة اله با اجاره دهنده نمیتونه فسخ بکنه اون چیز رو که با اجاره شداده با نیازه بگون طرف وسائلو بورده برای اجاره وسط كاره اجاره دهنده نمیتونه بیاد بگه آغا من خودم نیاز دارم بهم بده نمیتونه وله ان يؤجر ما استعجره فيما بقية من المدت بما شاء من العجره و شخص این اختیار داره که یا یا اجاره یعجره وله این یعجره ما استعجره و این حق داره که به اجاره بده اون چیزی رو که اجاره گرفته در اون مدتی که باقی مانده به با هر موزی که بخواد مثلا بنامه مثال بگه بالابری رو یا خلاتی رو اجاره کرده می اون مدتی که کار خودش تموم شه میگه به اجارهش با هر پولی ویمنع المؤجر فيها من البيع والاجاره و ویمنع المؤجر فيها من البيع والاجاره وممنوع شيء مؤجر اجاره دهنده در اون از فروختن و اجاره دادنش و اذا تسلم ما استاجره ولم يتصرف فيه حتى انقضت المدته لازمه الاوجره اگر تحویل گرفت اون چیزی رو که اجارش کرده بود و در اون چیز تصرف نکرده بود کارش نبرسه بود تا اینکه مدت تموم شد لازم است که اون اجاره رو و اون مزد رو باید بده بله خب یک نقطه خشنگی در پاورقی آورده میگه از صحت شروط صحی بودن اجاره رضایت دو طرفه شناخت است که برش قرارداد بستند تا فردا روز درگیری پیش نیاد اون شناخت به این اندازه باشه و اون معقود علیه مقدور الاستیفا باشه میتونه بهش تحویلش بده بر اون چیزی که برش قرارداد بستند بعدا در آخر میاره مثلا میتونه حیوانی رو که فرار کرده یا خونه رو که غصب شده به اجاره بده و همچنین اون منفعت از منفع منافعی باشه که مباهه نمیتونه شخصی رو اجار بکنه تا براش شراب حمل بکنه یا انسانی دیگه رو ظالمانه بکشه و این مسائل